سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی تزکیه نفس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه السلام جلسه نهم اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الی که یعود السلام سبحان ربک رب العزه عما یسفون و السلام على المرسلین و لله رب العالمین السلام عليك ایوها النبی و رحمت الله و برکت السلام على الائمت الهادین المهديين السلام على جميع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علينا و علی عباد الله الصالحین السلام علیه امیر المؤمنین. السلام علیه صديقه الشهيد. السلام علیه الحسن و الحسين سيدي الشباب للجنه اجمالين. السلام علیه علي علی ابن الحسين زين العابدين. السلام علیه محمد ابن علی باغر علي باقر علم النبيين. السلام علیه جعفر ابن محمد النصادق. السلام على موسی بن جعفر الكاظم السلام على علی ابن موسی رضا السلام على محمد ابن علی الجواد السلام على علی بن محمد الهادی السلام على الحسن ابن علی الزکی العسکری السلام على الحجت ابن الحسن القائم المهدی قال الله تعالی في کتابه الرحمن الرحیم و نفس و ما سواها فالهما فجورها و تقواها قد عفل من زكاها و قد خاب من دساها دو تا سوال اجازه بدید چون در ارتباط با بحث هست در ضمن بحث من ابتدای اشاره ای بکنم و در ضمن بحثم ایجاب کرد اشاره ای خواهیم داشت فرمودن که در آیه سی و دوی سوره فرقان آمده که کافران جاهل به اعتراض گفتند چرا این قرآن یک جا برای رسول نازل نشده تا ما تو را آیات آن دل آرام کنیم در صورتی که ما میگیم قرآن در شب قدر یک جا بر پیغمبر نازل شده است جواب ببینید اون گونه که بزرگان علم قرآن مطرح کردن میگن قرآن یک نزول تدریجی دارد یک نزول دفعی میگن نزول یک باره ای قرآن در شب قدر است. حتی در برخی از روایات هم اینگونه اشاره شده که پیغمبر فرمودن هر سال دو بار یک دفعه تمام قرآن بر من نازل می شد و یا یک بار امسال دو بار من تردید کردم یا دو بار امسال یک بار سال آخر اوم که از این قضیه استنباط می که سال آخر حیاتشون باشد این اشارات هم در روایات شده اما این نزول یک ای قرآن کریم که بعضی از کلمه انا انزلناه فی لیلت الغر انزله باب انزال را نزول یک باره ای می گیرن مثلا میگن اگر الان این لیوان دستبنده است من اینجا رها کنم یه دفعه بیاد پایین این رو تو کلمه با تو باب افعال میبرن انزله انزال اما اگر آبی که در این لیوانه بخوام آروم آروم قطره قطره با یه مقدار ملایم بریزم به مرور بریزه اینو تو تنزله میبرن میگه اینکه قرآن کریم در آیات اومده که هم به صورت تنزل هم به صورت انزال اشاره به نزول یک و نزول خرد بوده نزول یک بار مربوط به قلب پیغمبره نزول خرد خورد پیغمبر مامور به رسندن به دیگران و مردم را از این طریق ارشاد کردن که در از روایات داره این نزول تدریجی پنج آیه پنج آیه یا ده آیه ده آیه بوده نه اینکه استثناء استثنان گاهی یک آیه بشه گاهی دو آیه بشه اینا شده معمولا میگن پنج آیه پنج آیه یا ده آیه ده آیه میشد مردم اونچه که در برخورده با پیغمبر داشتن این نزول تدریجی اونی که مربوطه به قلب پیغمبر بود پیغمبر می دانست امیر المؤمنین می معمور به یک بار در اختیار مردم قرار دادن نبودن باید به مرور به مردم طبق وحیی که در هر جا نازل می شد ابلاغ بفرمایید. این نه تضادی نیست تناقضی نیست منافاتی هم نداره در آیه 72 سوره احزاب این امانتی رو که ما به آسمان و زمین و کوه و عالم و اینا بخوایم بدیم اینا تحملشون ندارن اما به انسان ارزه کردیم و انسانم ناسپاس بود دو تا سوال اینجا فرمودن یکی این که این امانت چیست دوم این ناسپاسی چیست تفاسیر متعددی شده اما در یک بیان کلی بخوام بندرس کنم میگن این همون ولایت هست که انسان میتوانه مقام ولایت الهی رو پیدا کنه که در رأسش اولیای معصوم علیهم السلام و به میزانی که طبعیت از اونها دارند یک درجات بالای انسانی انسانها پیدا کنند اینو انسان میتونه این مقام رو کوه نمیتونه دریا نمیتونه آسمان نمیتونه زمین نمیتونه این مال انسانه اما این ناسپاسی خب نسبت به مقام ولایت چقدر ناسپاسی شده که اشاره فقط میکنم در حد پاسخ به سوال و گرنه بحث مفصلی است. آیه ای داریم در قرآن کریم، "الام ترا إلا الذين بدلوا نعمة الله كفر و أحلوا قومهم دار البابر". این آیاس در قرآن که خدا میفرماید ندیدید اون کسانی که نعمت خدا را خفران کردند، نعمة الهی را جابجا کردند. و مردم رو در اثر این کفران نعمت به سوی جهنم سوق دادن در تفسیر این آیه در کافی روایت داره و در تفاصیر روایی که یادم میاد امیر المؤمنین علیه السلام اون مقداری که یادمه کلمه والله داره <تصفح> فرمودن والله این نعمت کفران شده ما هستیم اون نعمتی که خدا قرار داد و کفران کردن این نعمت رو در اثر این ناسپاسی، این قدر ناشناسی و این کفران جهنمی شدن طبیعی هم هست پس این نعمت تفاثیر متعددی شده با همدیگه قابل جمع هم هست دا. مثلا بعضی ها میگن قدرت اختیار انسانه خب بله قدرت اختیار انسان هم یه <تصفح> <يه> سرمایه بزرگیه <تصفح> مناپات نداره اون بالاترین بار امانت که خدا قرار داد اون مقام ازمای ولایت اولیای الهی است که خداوند قرار داده که خود بحث مفصلی بحث در خصوص تزکیه نفس دیشب به اینجا رسوندیم که اگر ما ارزش نفسمون رو میدانیم یا باید بدانیم به ای که توان داریم بدان... میدانیم و معترفیم که خداوند نفس ما را عظیم قرار داده و به کمک این نفس تعالی، رشد تکامل و اون مقاماتی را که خدا برای این انسان مقرر کرده به خاطر این نفس که ما میتونیم به او برسیم لازمشم هم اینه که تزکیه نفس داشته باشیم راه عملیش رو بیشتر بحث کنیم کلیگوی نکنیم نفس ارزنده است نفس گرونبهات نفس پربهات به وسیله نفس انسان میتونه تکامل پیدا کنه تعالی پیدا کنه خب چکار کن؟ راهش چیه؟ عملا از کجا شروع کنه به صورت تفکیکی و جزئی جز جز تفکیک کنیم یک دو سه چکار باید بکنیم؟ ار سردم در یک دسته بندی کلی کلی ما برای تکامل چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی دو اصل نظری و عملی رو با همدیگه احتیاج داریم نظری تنها کفاف نمیده عملی بدون پشتوانی نظری صحیح هم نتیجه بخش نیست ما یک مقدار احتیاج به جنبه نظریش داریم چون نفس ما دو قوه ای دارد یکی قوه نظری یکی قوه عملی اگر ما با فکرمون با تشریسمون با وجدانمون با این سرمایه‌های عقل و قلبمون میتونیم خدا را بشناسیم به اندازه توانمون ما عرفنا حق معرفت یک رو توجه داره اون اندازه‌ای که در حد توان ماست خدا را بشناسیم در صفاف خدا مطالعه کنیم اولیای خدا را بشناسیم انبیا را بشناسیم ائمه را بشناسیم امامان را راجع به قیامت مطالعه کنیم اعتقاد و ایمانمون تا به اونجا برسی که و بالاخرت هم یوغنون یقین نسبت به قیامت پیدا کنیم اینها همه بحثهای است چون قوه نظری در نفس ما هست این قوه نظری کمالش به این است که در جهت نظری رشد پیدا کنه تکامل پیدا کنه شناخت بهتر معرفت بیشتر آگاهی در سطح بالاتر تا به با اون اندازه که وقتی پیغمبر اسلام طبق روایاتی که در دسترس ماست وارد مسجدی شدند یک عده نماز مستحبی میخوندند یک اده گوشه مسجد مشغول بحث و بررسی مسائل اعتقادی و دینی و باورهای مذهبیشون بودن حضرت فرمودند هر دو دسته کار خوبی میکنند، ولی من اون دسته را ترجیح می دهم در اون حلقه در مفاتی مرهوم شیخ عباس قمی رزوان الله تعالی عليه جزعه آداب شب غدر که نقل میکنه خونده اید و توجه دارید شب غدر با اون همه ارزش شب عبادت هست، شب توبه هست، شب گریه است شب انابه، شب توسل میگه یکی از عبادات ارزنده این شب بحث علمی در خصوص دینه تو مفاتی هم داره، تو روایات هم هست یعنی انسان شب غدر بشینه در خصوص مباحث دینش شنود داشته باشه مطالعه داشته باشه بررسی بکنه به خصوص اگر در رابطه با رشد معرفتی که از اون رشد معرفتی هم در عبودیت بیشتر بخواد سود بجویه جوه که انشالله ارتباط نظر و عمل رو یه مقداری حالا فرصت شده میشب عرض خواهم کرد بیاری خدا این مقدار برای ما ارزش قائل شده. روایاتی که از معصومین علیهم السلام در خصوص علم، عالم، تعلیم، تعلم، کلاس درس، بحث، آموزش داریم، الا ماشاءالله. من عرض کرده ام روایات به صور گوناگون، اما اونی که دیگه تا این حد ارزش ذکر میکنه که من از این بیشتر بنده برخورد نکردم این روایاته که پیغمبر فرمودن اگر کسی برای خدا نیت خالص برای خدا همه جا شرطه کما این که نماز هم اگر نیت برای خدا نباشه ویلول المسلینه و ها که عرض کردم اگر برای خدا انسان از خانش خارج بشه یاد بده یا یاد بگیره طبق حدیثی که از پیغمبر داریم خداوند به هر قدمی که این انسان برمی داره عجر هزار شهید بش میده. اینقدر ارزش. این مال بعد نظری نفس ماست که ما بر مبنای داشتن چون این قدرت بینشمون را معرفتمون رو بالا تر ببریم و در یادگیری و یاد دادن کوشا باشیم این قسمت اول حالا که میخواییم بیایم یاد بگیریم و یاد بدیم ما خیلی چیزا رو تو این عالم میتونیم یاد بگیریم همه علمها هم فیزیک یاد بگیریم ریاضیات یاد بگیریم طبیات بگیریم مهندسی یاد بگیریم و اینام دانشی است که در این عالم مطرحه به ما نگفتن نرید فیزیک یاد نگیرید ریاضیات یاد نگیرید شما پزشک نشید مهندس نشید نهم چون حرفی به ما نزده حتی در یک شرائطی حتی جنبه ی واجب کفایی ممکنه پیدا کنه با یک شرایط خاصی شما اگر می توانی جوان شیعه قوی بشی پزشک متدین بر ای بشی نیاز جامعت رو برطرف بکنی چرا مردم برن سراغ پزشک یهودی چرا برن سراغ پزشک کمونیست بیدین تو توی جوان شیعه پزشک قوی متدین لایقی باش مردم رو مداوا کن مهندس لایقی باش نیاز جامعه شیعت رو برطرف کن این جای خودش محفوظ بحثی نیست اما یک بحث در اینجا مطرحه ما در این گونه دانش ها میبریم بالای بالا در حد واجب کفایی دیگه از این که نمیده واجب کفایی اگر به اندازه ای که کفایت کند دیگران بلد شدن بر من است در یادگیریش نه الحمدلله مثلا پرز کنید بنده بگم الحمدلله خدا رو شکر الان یک عده پزشک لایقه متدینم هستن منم نیازمندم به اونها مراجعه میکنم دیگه بر من تکلیفه که حتش من بندم پزشکی بخونم پزشکی یاد بگیرم نه لزومی نداره دیگران بلدن من میرم استفاده میکنن ما مهندس لایق متدین خوب داریم بندم احتیاج دارم مسجد بسازم حسینیه بسازم بیمارستان بسازم خونه بسازم آقای مهندس شما لطفا مطالعه کنید دوران طرح بدید وان چیکار کنم دیگه لزومی نداره من مهندس بشم ولی یک دانشی هست تک تک بر اونها واجبه میشه واجبه عینی واجبه کفایی به اندازه ای که کفایت کرد واجبه همین مثالی که زدم پزشکی مهندسی و و اما اگر واجبه عینی در نظر بگیرم مثل نماز همه شما نماز مغرب شاتونو خوندید بنده بر فرض نخوندم بگم خب این همه خوندن کافیه دیگه کفایت نمکنه من یکی هم بخونم نه خیر شخص شما واجبه این تکلیف فردی و شخصی به اندازه‌ای که کفایت کند این نیست. میان در بحث معرفت دین، خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، آخرت شناسی، وظیفه من در این عالم چیه؟ من برای چی اومدم؟ کجا هستم؟ کجا می‌خوام برم؟ چه می‌کنم؟ چه باید بکنم؟ چرا چنین باشم؟ چرا نباشم؟ اینها دانشی نیست که بگیم به اندازه‌ای که کفایت می‌کنه آقا من محققی سراغ راق دارم غرق این مسائلن در حد ناب ناب همه ی حرفا رو بلدن شما چی؟ شما به خودتون باید خودتون رو غانه کنیم یعنی بنده بگم آقا الان همین درستی مثال دقت در بفرمایید این حسینیه و این تعداد آقایون و خانومایی که اینجا دارن بگیم آقا ما یک حسینیه نخوام بسازیم. من بگم که با این نقشه یه چیزی اینجا طرح میکنم میگم اینجوری خوبه شما میفرمایید نه اینجوری آقا میفرماید نه اینجوری بعد میگن آقا متخصصه فنه ایشون دقیقاً تو این زمینه کار کرده میریم خدمت آقا آقا شما بفرمایید چه اینا رو خط زنه یه شکل اینجا میکشه میگه این کارو بکنید میگیم چقدر بسیار خوب خب ایشون صاحب نظرن گفتن تموم شد ما همه قانع میشیم اما بنده بگم خدای نکرده نزع بالله خدا نیست شما خدایی نکرده به قیامت دروغه، آقا خدای نکرده به امام و پیغمبر دروغه، یا آقایی که متخصص درجه یک دینشناسیه، هم از نظر علمی در اوجه، هم از نظر عملی در اوجه، تمام وجودشم داد میزنه از ایمان، باور و صداقت. میگیم خدمت آقا، آقا بنده میگم خدا چیه؟ قیامت چیه؟ نعوذ بالله الدین چیه؟ پیغمبر چیه؟ امام چیه؟ آقاام همینطور آقام همینطور ببخشید مثال شما بفرمایید. شما میگه نخیر آقا خدا حق است، پیغمبر حق است، قیامت حق است. شما میگید خدا خداحافظ شما میاید بیرون. بعدم شما با تمام وجودتون میگید بله خدا حق است، پیغمبر حق است. اینو میتونید بگید یا همونجا اگر این فردی که به صورت نابی مسئله رو بلده شما بهش میگید که آقا خدا حق میگه بله شما میگید چرا؟ به چه دلیل؟ به اندازه ای که شما قانع بشید برای شما استدلال میاره یا نه؟ همون کاری که امام صادق علیه السلام به اقتضای سطح مستمعین با اونها داشت <تصفح> یکی میاد میگه امام علیه السلام مثل تویید مفضل رو مطرح میکنه یکی میاد سوال میکنه امام علیه السلام میفرماید سوار کشتی شده ای؟ در جایی که کشتی داره غرق میشه از همه جا امیدت غرق شده به یک ام نکته امید داشتی یا نه یکی هم مثل ابن عبل اوجا میاد که در اصول کافی کتاب توحید یا در کتاب توحید مرحوم صدوق سه سطحه بحثه بحثای قوی و واقعا جایی بحث داره که بعضی شروف آقا تو جلسات خصوصی بحث کردیم و خوندیم حضرت استدلال میکنه شما یا بوده اید یا نبوده اید اگر نبوده اید که در ایجاد خودتون نخش ندارید اگر بوده اید بودید و خودتون ایجاد کردید میشه تحصیل حاصل اگر بوده اید بودتون متکی به جای دیگر اون جای دیگر ای که متکی به اونجا هستید او هم بوده هست از ی به اقتضای سطح سؤال کننده و میزان قدرت دریافت کلم ناس علا قدر عقولهم هم گفت شنود لازمه بحث لازمه پس ما بر مبنای قوه نظری نفسمون نمیتوانیم در خصوص خدا پیغمبر قیامت معاد امام اینا ساکت بشینیم یه مقداری که حالا سطح بنده مثلا خیلی پاینه با دو تا سه تا چهار تا کتاب خوندن به اندازه‌ای که برام لازمه به این اسمینان میرسام شما سطحتون در جایی است که آرامش پیدا نمیکنید میخواید بگید بالاتر 50 تا کتاب میخونید یکی دیگه در سطحی است که 500 تا کتاب باید بخونه یکی دو سال یه تعدادی جلسه میره این مسائل اعتقادی شو قوی میکنه یکی 20 سال کار میکنه قوی میکنه میره بالا مثلا در امام شناسی اون حد معرفتی که علامه امینی مطرح میکنه با اون حد معرفتی که امثال بنده مطرح میکنم و خیلی فرق داره او مثل مرحوم علامه امینیس قرق شده تو این وادی مطالبی میفهمه حقائقی ولی من اگر علامه امینی نیستم به اندازه خودم نفسم این سوال را ایجاد میکند تو کی هستی؟ چی میگی؟ راست پیغمبر و خدا آقا این همه افراد اومدن گفتن پیغمبر قیامت مو از ماست میکشن حساب داره کتاب داره آخه بیهود سخن بدین درازی نبود این همه اغلا متفکرین بزرگان در طول تاریخ دنبال اینا رفتن چقدر خاضع و خاشع شدن یه نکته ای که من اینجا از برادران و خواهران تر تواضا دارم دقت کنن نوعا هم تو کلاسای دانشگاه من زیاد به این نکته تاکید میکنم میگم نکنه این غرور شما رو بگیره اگه دو تا اشکال به ذهن شما زد چهار تا ایراد تو ذهن شما خطور کرد خیال کنید که این اشکال و ایراد تعالی به ذهن کسی خطور نکرده جوابم نداره کسی هم جواب نداده پس کنید این حرفام مسخره است شما اشکال ببرید پیش احلفتن تا علفشو شروع کردی او تا جیم و دالزال و دال و زال بقیهشان برات میگه میگه این اشکال چند سال قبل مطرح شده کیا مطرح کردن به چه صورت بوده شکل جدید امروزیشم اینه جوابشام اینه اینجوری نیست این بزرگانی که رفتن دم از این مسائل زدن اونا قوه نظریشون متوجه مسائل نبوده رافتن بحث کردن مطرح کردن لذا نوع کتاب های مخصوصا ما شیعان انقلت انقلت انقلت دیگه میگه اگه میگی اینجوری میگم پس اینجوری اصلا انقدر دفع دخل مقدر داره به قول به صورت تخصصیش بخوایم بگیم اگر این اشکال مقدر گرفتی جوابش اینه اگر کسی این اشکال به ذهنش داد بس جوابش اینه خب اینا کار کردن تو این زمینه ما نمیتونیم تو مسائل دینی مثل مسائل ساختمونی برخورد کنیم مثل مسائل تجشکی برخورد کنیم مثل مسائل مثلا فرض بفرمایید که تخصص فنی یک اتومبیل برخورد کنیم آقا بنده از اتومبیل فنی هیچی سر در نمیارم متخصص اتومبیل ساخته داده به من یه مختصر اطلاعاتی هم که فعلا رانندگی کنم ازش دارم استفاده میکنم بله بلد باشم خوبه اشتباه نشه نمیگم بدا حالا بلد نیستم من بدون اطلاعات رانندگی هم بلد نشم هم مردم دیگران رانندگی که از من که اتومبیل نشسته بودم خیلی قبوله یا مسائلیه <تصفح> اما من میتونم نسبت به همین حد آقا یک عده اومدن گفتن خدا هست کیا پیغمبران پیغمبران کیا بودن ما راجع پیغمبر اسلام اینجا شعبت کنیم آقا شما یک نفر در تاریخ پیدا کنید که راجع به پیغمبر اسلام مونیکر این مسئله باشه که قبل از به ست درست کار بوده که همه بهش می گفتن امین و بعد از به تنها و تنها ایرادی که بر این انسان گرفتن ببینید غیر از این دو حرفی که من میزنم چیز دیگه هست یک شما جمع ما رو پراکنده کردی ماها متحد بودیم. اختلاف نداشتیم همه یک دل یک زبان بطپرست بودیم تو اومدی بطای ما رو کوویدی بین ما اختلاف انداختی یه اده میگن بط یه اده میگن نه یعنی اتحاد باطل رو به هم زدی نه اتحاد حق رو این که میگیم باید وحدت بشته باشیم وحدت حق نه وحدت باطل وگرنه وحدت باطل رو باید به هم زد وحدت حق رو نباید به هم زد باطل رو خب قبل از حضرت ابراهیم خلیل بت پرستا ها متحد بودن ابراهیم خلیل سلام الله علیه اومد توشون اختلاف که دیگه رو شکست و چه و دو دستگی توشون یا چند دستگی ایجاد کرد یک اشکال که به پیغمبر اسلام میگیدن اینه تو بین ما اختلاف انداختی خب بله این حق بود پیغمبر این که خلاف نیست اشکال دومی که بر پیغمبر میگرفتن چی بود جز این گفتن آقای ساحره سحر میکنه چرا چون عظمت قرآن عظمت کلام پیغمبر عظمت تأثیر گذاری که دلها رو می و اون چنان تحت تأثیر قرار میداد، اینا با معیار دنیاوی و مادی خودشون نمی تحلیل کنن می گفتن این صاحره خب یک همچنان انسان‌های بالای انبیا بعد از انبیا اولیا بعد از انبیا و اولیا انسانهای برجسته شما در طول تاریخ نگاه کنید تو همه جای دنیا اینا اومدن گفتن آقا خدایی هست، پیغمبری هست قیامتی هست حساب و کتاب داره، چشمتون حساب داره، گوشتون حساب داره، دستتون حساب داره، پاتون حساب داره، یک کلمه حرف زدن شما حساب داره، خدا رحمت کنه، یه بنده خدایی بود این در مسئله شرعی گفتن خیلی قشنگ تبحر داشت، خیلی زیبا مسئله میگفت، یادمه یه روز ماه رمضان و افراد گفت آقایون حرفی کردن دادن روزه رو باطل می‌کنه یا نه؟ گفتن خب نه دیگه صرفی گم بدیم گفت چرا صرفی کن دادم روزه رو باطل گفت چطور گفت دروغ بستن به خدا و پیغمبر روزه رو باطل میکنه یا نه بله گفت کسی دروغ بسته به خدا و پیغمبر و امام شما می‌دونید دروغه به شما میگن آقا همینطوره شما صرفی کن می‌دید و خب تایید کردید دیگه دروغ گفتید یعنی اینقدر کار الهام حساب داره یه صرفی کن دادنتون حساب داره نمیتونی همونجوری کن بدید حالا تو ماه رمضان مفصل روزه حسابیه همونطوری که در ایام احرام یک حاجی متوجه میشه عبد عبد در مقابل مولا بود خاضه باشه آقا سرخاروندنتون حساب داره آقا پا برداشتنتون حساب داره آقا نحوه حرف زدن شما حساب داره یه عده اینجوری برخورد میکنن یه عده میگن بزن بل قبل بی آری که اون هم عالمی داره بی خیال همه چی حرفا چی آقا میزنیم و میبندیم و میگیرم و میخوریم و میبریم و هر کاری دلمون خاص تو این عالم میکنیم کی به کی آقا بی ارزه ای که نمیبری بی ارزه ای که بارتو نبستی بی عرضه ای که عین ای این عبارت رو بعضی جوون ها با من می شینن ممنونم خدا میدونه صادقانه میگم دستتونم میبوسم که اینجور صادقانه اشکال میکنید تا با, با هم حرف بزنیم میاد صادقانه به من میگه آقا به ما میگن تا جوونید دنبال عیاشی نرید و از جوونیتون استفاده نکنید کنا سرتون رفته خب اگر حساب و کتابی نباشد بله راست که نه حسابیه نه کتابیه نه خدایه نه پیغمبریه نه قیامتیه نه مو از کشیدنه پس اونی که زد و برد و خود او برده اما اونی که میگه برادرم جهان صاحب داره خیال کردی یه اداره اگر رئیس ادارش خاک بر فرق من و تمثیل من من چه بکنم؟ کنم تو عالم مادم مجبورم با این مثال ها بیام جلو یک اداره اگر پون تا پرسنل زیر پوشش یک مدیره این مدیر عادل باشه یه مقداری آگاه باشه یه مقداری با توجه باشه نمیذاره حقی کسی بشه امیر المؤمنین علیه السلام تو فرمانی که به مالک اشتر دادن چی فرمودن؟ یا مالک ولای خونن المحسن والمسيء اندک به منزله ثواب لان فی ذلک تزهیدا لأهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه مالک مبادا در اون منطقه‌ای که تو میخوای حاکم بشی، استاندار بشی، مدیر این منطقه بشی، افراد رو زیر پوشش خودت بیاری، محسن و مسیء نیکوکار و خطاکار در پیشگاه توی اندازه باشنا یکسان باشنا بینشون فرق بذار یعنی حساب کتاب برقرار باشه چرا لانا فی ذلک برای اینکه به علت اینکه تزعیدم لاهل الاحسان فلهسان نیکوکار و محسن نسبت به ادامه عمل نیکوی خودش سست میشه دل سرد میشه میگه ای بابا هیچ تو به هیچ که نیست پس چرا ما مثل بقیه بدی نکنی، وقت خطا کار و بدکار نسبت به ادامه بدکاری خودش جسور میشه میگه حالا که کسی به کسی نیست نه خیلی باید حساب داشته باشه یه مدیر لایق باید حساب داشته باشه خدا یه جهان حساب نداره کارش اون جوانی که پاک زندگی میکنه با اون جوانی که آلوده میشه خداوند بین این دو تا نگذاره تمام شد رفت در روایات ما داره فردای قیامت برخی از جوون ها که آلوده شدند اینا رو میارن بازرسی میکنن بازپرسی کنن چرا آلوده شدید؟ میگن جوان بودیم زیبا بودیم ثروت داشتیم امکانات داشتیم میگازات یوسف رو بیارید از این زیباتر بودیم از این امکاناتتون بیشتر بود تا این هد شرایط براش آماده شده بود اما خدا رو در نظر گرفت یا جوون در هر سنفی برادر و خواهر خدا برای اتمام و حجت پاک قرار داده مؤمن آل داریم تو کاخ سرعون آسیرم داریم و و و خدا در هر سنفی مؤمن باقی گذاشته فردای قیامت برای اتمام و حجت میاره جلو ما میگه پس اینا چرا تونستن پاک بمونن؟ پس این معرفت و این شناخت و این آگاهی آقا یه حسابی در کاره یا نیست؟ لذا این امیر المؤمنین علیه السلام که امام من و شماست از آدار او ایام و دم میزنیم از ولای او و به این میبالیم به ما چی یاد میده؟ و امران علم من عین و فی این و الا این رحم الله امران خدا رحمت کنه اون سردی را یعنی به تعبیر خودمونی بخوام بگم نقل و معنا ای درود بر او باد ای زنده باد ای به با حاله اون کسی که علما یاد گرفت دانش فهمی پس این دانش رو من عین از کجاست و فی عین در کجاست و الای عین به سوی کجاست خب از کجا اومدم برای چی اومدن چه کار دارم میکنم این معرفت مثل معرفت فنی مهندسی پزشکی ریاضیات کشاورزی دام پزشکی نیست اشتباه شما ما تو همه این رشده اینجا الحمدلله هم دانشیوشو داریم هم استادش و هم نظرش نظرشو اما اینو ارزم کنم اینا جای خودش محفوظ همون پزشک متخصصه در رشته خودش اولین صاحب نظر ای زمین احتیاج به این داره که بدانه من از کجایم در کجایم به سوی کجایم من برای چی اومدم؟ یادم نمیره خیلی قبلشاد 17 سال، 18 سال قبل 15 سال قبل یه جوانی که سال آخر دبیرستان بود میخواست کنکور بده انتخاب رشته کنه با من مشورت میکرد گفت فلانی پزشکی رو خیلی دوست دارم میخوامم پزشکی رو بزنم میتونم هم قبول شم ولی یه فکری به ذهنم زده دوچار تردید شدم گفتم چی آقا؟ گفت که تو ذهنم زده که اگر من شدم. مثلا 10 تا 20 تا 100 تا حالا تعداد هر چی در نظر بگیرید می‌خواستن بمیرن خدام حالا عجل حتمیگه الان براشون نبوده من با مداوا کمی مرگشون رو عقب انداختم میخواست دل درد داشته باشه من با مداوا دل دردش مداوا کردم این بنا بود شبا سرش درد بگیره بخوابه من با مداوا کردن سردردش بردم بالاخره این این رو انجام دادم اما نمیدونم این دز یا خدمتگزار اگه دزده این دوز دل درد داشته باشه بهتره یا سالم سر باشه بهتره به قول سعدی ظالمی را خفته دیدم نیمروز گفتم این فتنه از خوابش برده به وان که خوابش بهتر از بیداری است این چنین بد زندگانی مرده به حالا یه دزد خائنی امشب اگه سر باشه باشه چرت خونه رو میزنه خیلی بهتر درد داشته باشه ناله کنه بیفته اونجا من دارم اینو مداوا میکنم آیا نمیشه کار بهتری بکنم از عمرم این دقت رو من به ایشون گفتم شما برو پزشک بشون وقت پزشتم شد الانم ماشاءالله موفقه گفتم شما برو پزشک بشون این تیپ وقتی پزشک میشه این تیپ مهندس میشه این تیپ صاحب نظر توی ای میشه این ارزنده است با این تفکر میاد اما حالا همین آقا پزشک دقیق حاضق نسبت به این رشته هست اما در این حال نمیگه درندرون من خست دل ندانم چیز که من خموشم و او در فقان و در قوغاست آقای که از درون من برمیخیزه درست من تمام اون مورگهای بدن شما رو میشنستم چگونگی اعمال سلولهای بدن شما رو بلدم سیستم مداوا خیلی خوب. عالی عالی. هر چی میخوایید بگی یا به عنوان یک صاحب نظر فنی آقا پیچیده ترین کامپیوتر رو من ریزه کاری هاش رو براتون توضیح میدم خدا جزای خیرتون بده مام افتخار میکنیم جوانای ما تو هر زمینه ای به قدری بشن و بیان بالا ما گردنمونو میکشیم میگیم الله حمد جوانای ما اینم ببینید چنین چه پیشرفت میکنن اما این آقایی که اون پیچیده کامپیوتر رو برای من تشریح میکنه و اون پزشکی که ریزترین رگ بدن و پیچیدگی های سلول رو برای من تشریح میکنه این سوال برای او مطرح من کیم کجا؟ چه کار دارم میکنم؟ برای چه هستم؟ این کاروان کجا داره میره؟ راستی با مردن تمام میشه یا با مردن شروع یک حیات دیگره؟ شما رو به خدا یه لحظه همینجا دقت کنید؟ همه یه حرفات اینجا شروع میشه با مردن تمام شد؟ یا با مردن شروع یک حیات واقعی است. گر مرگ رسد؟ چرا حراستم؟ که این راه به توست میشن مرگ اگر مرده است گون از من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ من از او عمری ستانم جاودان اوز من دلغی ستاند رنگ رنی خب این خیلی فرق میکنه همین پزشکی که الان من کردم دو تا پزشک در کنار هم بگیری حالا ما میگیم تذکیه نفس تعالی نفس الا هنوز تو بعد نظریشیم عملیش باز من دا میرسم انشالله خود این تو نفس مطرح دیگه آقا بیام تو فکرم تو شناختم تو بینشم تو باورم تو اعتقادم توی معرفتم اینو معلوم کنم آ دو تا پزش در ارض همان هر دو صاحب نظر متخصص قوی در این رشته در کره زمین در ارض هم یکی میگه با مرگ همه چیز تموم میشه یکی میگه با مرگ شروع حیات واقعی من در پیشگاه پروردگاری حاضر میشم و من یعمل مثقال ذرة خیرن یه و من یعمل مثقال ذرة شرن یه ره یا در اون آیه شریفال یادم بیاد میگه وقتی نامه اعمال جلوشون میگذارم و مجرمین مشفقین و یقولون یا ویلتنا مال حازل کتاب لا یقادر سقیرت و لا کبیر الا احزا الله <تصفح> این تای سقیرت و تای کبیره چه تاییه وحدت یه دونه از این کچولوها قرآن دیگه یعنی یه وقت ما اینو باور کردیم شناخت داریم خدایا تو را به مولامون امیر المؤمنین قشم میدیم معرفت دینی ما را به حدی که این باور، این ایمان این اعتقاد در جان ما ریشه بدوانه به ما مرحمت بفرما خیلی حرف آقای اون خیلی حرف خانم ما روش انایت داشته باشی ببینی میگه و همین آیه رو اگر خدا میدونه نمیخوام نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم حالا اجازه بگذارم شما این آیه رو وقتی دقت همین آیه رو دقیقه بخونید به نظر من کافیه میگه وقتی نامه اعمال میارن میار شما میگذارون ای چی فرو گذار ما نگاه میکنن یقولون قولونه میگن یا ویلتنا ای وای بر ما مال حاضر کتاب ای عجب نوشته ایه عجب پرونده زقیق سبت و ضبط کرده ایه ببینید وقتی لا یقادر قادر سقیرت ولا کبیره یک دونه از این گناهان کوچک من <تصفيق> یک دونه از این گناهان بزرگ من فرو گذار نشده <تصفيق> همه و همه دقیق ثبت و ضبطه این دوتا پزشی که در نظر بگیرید یکی میگه با مردن همه چیز تمومه یکی میگه نخیر شروع حیات حقیقی این دونوم شناخت و معرفت و آگاهی و بینش عمل ما رو چقدر تغییر میده چقدر در عمل ما تاثیر داره بنده میخوام الان از این حسینیه برم بیرون شناخت داشته باشم که هوا باران شدید میباره و خیلی سرده شناخت داشته باشم هوا خیلی گرمه بارونم نمیباره خب شکل خروج من عمل من خرق میکنه یا نه؟ بارون شدیده خب اگه دارم باز میکنم یا سعی میکنم یه چتری تهیه کنم اگه میشه یه شال گردن یه بارونی یه چیزی چون میدونم اگه تو این بارون شدید با این گرمای تو اینیه برم بیرون زکام و سردرد و سینه درد و صرفه و کسادت رو با دو ماه بخوابم مثلا اما اگر یقین دارم بیرون گرمه بارونم نمیباره خب من یه چتر باز کرده و با شال گردن پشمی دور گردن پیچیده خو خب اغلا به من میخندن چرا آزگونه بزید از نهجل اقه بگم اگه اشتباه نکنم حکمت شماره سیصد و دوازه یا سیصد۴ برای پردشار که زنده بودم دقیقش هز میکنم شب سیصد چه دو باشه. حالش رقمش الان تردید دارم. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخواد اوولییا را معرفی کنه. میفرمایید خم لزیم نظر این نظری جنبه نظری. و دوبااج با عمل ببینید. نظر اله باطن دنیا از نظر ناس اله ظاهرها این اول نظر رو ببینید بعد اشتغال دنبالش میگه عمل رو میگه اولیای الهی بندگان بر جسته خدا کسانی هستند که نظر و اله باطن دنیا که ظاهر رو نمیبینه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون باطن عالم رو میبینه یعنی خبرهایی حسابیه کتابیه اون مؤمنی که توی اصول کافی توضیح داده شده پیغمبر فرمود میخواد که از بهشتیا رو به شما نشون بدم نگاه کنید به چهره این جوان بعد حضرت فرمود از او بپرسید اون قضایایی که میدونید نظر رو به باطن دنیا خب حالا وقتی به باطن دنیا نگاه میکنن وشتغلو اینجا رو در قطع فرمیم وشتغلو به آجله ها با علف آجله با علف آجال یعنی اون دور دور ها اون درازمدت ها در مقابل عجله با این که نزدیکی ها وشتغلو به ها عمل میکنه برای اون چیز دور درازمدت ازش تقلن ناس به عاجله ها وقتی که عموم مردم انسونها به همین چیزهایی گذرای فعلی دلخوش میکنن این الان داره برای اونجا کار میکنه چرا؟ چون اونجا رو میبینه اگه بخوام در مقام تشبیه دنیایش عرض بکنم دو تا بچه دارن با هم بازی میکنن بچه هم سطح بینششون هم همین حد مختصر رو فعلا دیدنه آقا تلویزیون فیلم خیلی قشنگی داره ببینی. بازی زیبایی تو کوچه بچه ها دارن بریم تو کوچه بازی کنیم. داستان قشنگی رو توی نمیدونم قهوه خونه سر کوچه دارن نقبالی میکنن بریم میشیم گوش کنیم. این در حد همین که فعلا میبیند دل به همین خوش میدارد. اما یه پدر بزرگتر یه مادر با تجربه یه معلم آگاه یه مقدار دورتر رو می میگه بابا فرزندم شاگردم، تو آینده در پیش درس باد ب کارداری الان باید این فیلم ویزیری کنار. این قهوه خونه رو ای کنار این بازی رو ای کنار سر برم تو مدرسه بذارم. چرا این دو عمل مختلفه این بر مبنای حال است اون بر مبنای آینده است امیر المؤمنین علیه السلام می که کسی که نظر او الا باطن دنیا نظر بلنده افق دیدش گسترده است ما تذکیه نفس میخوایم یه وقتایی هی مطرح میشه آقا نشینی ها آقا اجتناب کردن ها آقا چنین و چنان ها یک باور کرده ایم مرگ قیامت سرات مو از ماست کشیدن ها حق است یا نه باور نکردیم تا نظر قوی نشه عمل قوی نمیشود از نظر شروع کنیم حالا که میخوایم این نظر اینو تکمیل عرض دیشب و چند شب قبلم هست عرض کرده. وارد عمل میشم که اشاره ای کنم انشاءالله تکمیلش برای فردا پس این نظر رو میخوایم در خودمون بیان قوی کنیم این نظری که می خوایم قوی کنیم در بحث تکامل خود من کیم عالی ترین تعریف به نظر شما در معرفی خودم چیه من عبدالله بنده خدا بهتر ازم میتونه چیز تعریف بکنه نمیدونم اگه هست بگید من استفاده میکنم من واقعا دلم میخواد اگر هست استفاده کنم بدونم ما اگر بخوایم واقعا در خودشناسی دقیق بشیم وجود ما بقای ما دوام ما هستی ما هرچه چه هر چه هر چه بگید منهای عنایت حضرت حق چیه هیچ بنده بندگی او خواسته باشم خدای یامتشکر ممنونم انایت کردی یا من ابتدع به نعم قبل استحقاقها من قبل از اینکه که به وجود بیام کی بودم که استحقاقی داشته باشم ابتد به نعم قبل استحقاقا منو آفریدی حالا که آفریدی آخه شما رو به خدا در این خودشناسی اون چنان محر مرا به دل مادر انداختی به دل پدر انداختی گاهی قیافه اون چنان زشته که اطرافیا ها غیر از پدر و مادر اصلا رقبت نگاه کردن به یک قیافه پیدا نمی اما همین مادر اون چنان خودش رو فدایی این بچه میکنه داد میزنه از خب می پره با تمام وجودش یا بچه شده سه سال چهار سال پدر از صبح تا شب توی کارگاه توی مزرعه، توی کارخونه، توی نمیدونم چی، بیل زده کار کرده، زحمت کشیده، عرق ریخته، برو داره بر میگذره میاد خونه، میبینه میوه نوبر آوردم، هی پول جیبش نگاه میکنه، هی میوه رو نگاه میکنه، میبینه قیمت بالاست، قدرت خرید نداره، دلش نمیاد یک کیلو بخره، از اون طرف ای بچه یه سه چهار ساله شو، دلش میخواد پول به اندازه یه دونه میوهشو میده، یه دونه میگیره میاد. بیل زده دستار پاول زده خودشم نمیخوره نمیتونم بخوره پوسم میکنه گاچم میگیره تو دهان این بچه میذاره بچه که شروع میکنه به جویدن و خوردن لذت هم میبره مادر صدا میکنه میگه ببین چه قشنگ داره میخوره اینو کی قرار داد در دل این پدر و مادر سعدی قشنگ گفته یکی تفل دندان برآورده بود پدر سر به حیرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش مروت نباشد که بگذارمش چ بیچاره گفت این سخن پیش جفت نگر تا که او را چه مردانه گفت مخور حول ابلیس تا جان دهد هر کس که دندان دهد نان دهد قبل از اینکه دندان در بیاره پستان مادر رو پر شیر کرد قبل از اینکه به دنیا بیاد پستان مادر رو پر شیر کرد چین رو به من و شما یاد داد آقا وقت آدم عاشق خدا نمیشه. آدم عشق خدا پیدا نمیکنه. معرفت اگر آمد، آقا یه انسان عادی بارها میگم آ. چه بکنم مجبورم مثال بزنم. اینا قابل مقایسه نیست اما در قالب مثال برای تقریب ذهن میگم. یه آدم معمولی، آیا یه شما دارید، 20 سال همسایه شما بود. در این 20 سال انقدر به شما محبت کرده، اینقدر به شما عنایت کرده. 30 سال شما از اون محله رفتی، هنوز یادتون میاد؟ برای امواتشون فاححه میکنید برای بازماندهاشون هاشون دعا می کنید گاهی به دیدنشونه آقا من شرمنده اینام چه ای شما بین الطاف انسونه ارزنده با لطف خدا میتونید داشته باشید. کی در دل این بچه قرار داد آقا وقتی از مادر متولد شد؟ جاش تره نمیتونه حرف بزنه مامان جام خیسه. قدرتم ندارم جامو عوض کنم دارم اذیت میشم گریه بکنه. نخنده. اگه وقتی جاش خیس بود به جای گریه میخندید اطرافیا ها متوجه میشدن بیان جاش عوض کنن گریه رو گونه ای قرار داد که اطرافیا رو متاثر کنه اونی که متاثر شده بدو بیادی بچه الان چی شده چه مشکلی داره چی شده تمام رو رو حساب و نظام در آلم به گونه ای قرار داده است حساب شده و دقیق که ما حساب داره کارمون در آلم خدای جانه. <تصفح> <تصفيق> جهان چون چشم و خط و خال و که هر چیزی به جای خیش نیکوس اون وقت یا من ابتدا به نعمه قبل استحقاقها قبل استحقاقها ها ابتدعه نعمه حالا اگر یه چهار تا سریم به سجده رسندیم یه چهار تا عشقیم ریختیم یه چهار تا دعایم کردیم این دفته دیگه نعمه او چه خواهد بود؟ او که نعم اون دارد نسبت به این این معرفت اگر ایجاد بشه نسبت به حضرت حق اون وقت میگه خدایا از دست و زبان که براید که از اهده شکرش به در اون وقت نسبت به کدوم خدا اون خدایی که تو حدیث واسی میگه اگر بنده من گناه کرد بعد اومد عوض خواهی کنه، توبه کنه، گردنشو کج کرد، پشیمون شد، من خجالت میکشم که او را نیامرزم. اخ شما رو به خدا دقت کنید. گنه بنده کردست و او شرمزد. با سعدی میگه: کرم ببین لطف خداوندگار، گناه بنده کردست و او شرمزد. اینجا تو پرانتز یه اشاره ای اونایی که مظهر این خدایم اونایی که انتخاب شده های این خدایم اونان تو عالم کاراشون ببینید چجوریه گفت آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام نشسته بود یه ادهی هم دورش بودم یکی از راه رسید یبن رسول الله تا حضرت نسا دیگر نسا کن نشست حضرتش پردن اندرون یه دریچه ای داشت از دریچه سری آوردن بیرون دستی آوردن بیرون طرف رو صدا زدن یه بسته ای رو بیشون دادن فرمودن برو رفت حضرتشو آوردن بیرونی اطرافی ها عرض کردن یا نرسول الله چی بود آقا فرمودن که این نیاز داشت فرمودن چرا نزاشتی حرفشو تموم کنه فرمود ندیدی چقدر داشت خجالت میکشید چهره نشون میداد حالا من نقل معنا بگم چهره نشون میداد آدم آبرومندیه آدمیست که فختشه اظهار نیاز کنه حالا نیاز وادارش کرده من که فهمیدم نیاز داره چرا وقت بدم که هی تکرار کنه رفتم از پشت دری که در موقع گرفتن چشمش تو کشم من نیفته خجالتش کم تر بشه خب اینا الگوی اون خدا تو این عالم برای ما هستن دیگه یعنی نماینده خدا یعنی خلیفه خدا یعنی مظهر خدایی در این آدم خواهی یعنی عبدالله علیه سالان جان آلم به فدایتون باد ای بزرگواران ای برجستگان آلم وجود ای انسان های اید آل به تمام معنا که اومدید ماها رو آدم کنید اما انسال من با تو چه کردی و با, با شماها چه کردی؟ یه قلامی تو خونه حضرت زرفی توش چیز مثلا نوشیدنی آورد بیاره پاش سرخد این ریخ به لباس حضرت نگران شد ترسی خاص از امام حسین علیه السلام کنه. حضرت پا شدن یه نوازشی به غلام کردن فرمودن که من باعث شدم تو بترسی الله و حکم شماره به خدا دقت کن من باعث شدم که تو بترسی برای این که جبران این حالت ترسی که در دلت ایجاز شده کرده باشم تو رو در راه خدا آزاد کردم برو و هم چی با؟ کجا برم آقا؟ از در خانه شما برم؟ اگه میشه جای دیگه برم اونی که اینو میفهمه میدونه که کجا میخواد بره خب اگر این معرفت نسبت به خدای جهان وجود ما لطف است مهری که در دل پدر و مادر قرار داده وگر نه کی رقبت میکرد یه بچه در اون شرایط رو این همه زحمت براش بکیشن؟ یارن بالا نیروبش بدن حالا نیروبش دادن اگر این گناهانی که من میکنم این ناسفاسی هایی که من دارم خداوند بخواد روزی من و به من نرسونه مگه نمیتونه در اثر بیروزگی بمیرم خداوند بخواد قهرش رو شامل حال من بکنه یه بلا بفرسه همه ما رو نابود کنه مگه نمیتونه اما هی مهلت میده هی مهلت میده هی مهلت میده ای فرسه هی, هی پیغمبر میفرسه هی امام میفرسه اون وقت یه پیغمبرش هم مثل جناب نوح 950 سال ناله میزنه خدا این مردم چه میکنن یه بازم صبر کن بازم حوصله کن بازم عزشون کن بازم ان بده یه بنده باز برگرده که وجود مقدس ابی عبدالله السلام وقتی که روز آشورا میفرمایند فرماین حلم ناصرنی انسرونی کسی جواب آقا رو نمیده. الله اکبر میگه پس مردم دور بشید صدای استقاسه منو نشنوید چون اگر کسی استقاسه منو بشنوه جواب نده مستحق بلا شما مستحق بلا نشید الله اکبر آدم اینا رو داشته باشه آخه شما رو به خدا مگه دل باید به چی داد؟ میخوام برسم کم کم به اونجا تو نظر کمی محکس کردم عمل و انشالله فرداشم اگر این نظر برای ما حاصل شد چه خدایی داریم و این خدا چه مظاهری برای ما گذاشته به خدا خدا قسم دل دیگه به چیز دیگه نمیده او منتظر چون خدا گفته هر وقت میتونی با من حرف بزنی اما یه وقتایی خاصی گذاشتم اون وقت های که نیمه های شم. نزدیک از آن صبح اون منتظره اون وقت خاص برسه اون وقت اونجا شروع کنه با خدای خودش حرف زدن الهی و ربی منلی غیرک اون وقت بعضیا حرف زدن های با خداشون در کجاست تو گودال قتلگاه به گفت از نماز را بگزا شاه. خود فرادا در میان قتلگاه اون نماز عشق که از خونش وزوست آشق و معشوق اونجا روبروست تو گودال قتلگاه دیدن لبان مبارک ابی عبدالله داره می جنبه. اما از بس شمشیر خورده خنجر خورده سنگ زدن نیزه زدن رمق بدن ظاهرا رفته صدا ضعیف به گوش میاد <تصفيق> <تصفيق> گفتن حضرت داره نفرین میکنه یه مقدار دقیق شدن دیدن داره میگه الهی رزم به رضا تسلیما لقضاک لا معبود سواه خدایا غیر تو معبودی ندارم و السلام علیکم و رحمت الله